این هفته یه قانونی توی مجلس تصویب شد که بر اساس اون حمل و تولید سلاح سرد شامل غمه، شمشیر، چاقوز آمندار، ساتور، قدداره یا پنجه بوکس مورد استفاده تو درگیری فیزیکی جرم اعلام میشه دیگه از این به بعد خب به نظر میاد قانون خوبیه هرچند تجربه نشون داده اینجور قوانین به تنهایی خب بازدارنده نیستن و عزیزان تیزیکش کشور با اینجور قوانین تیزیهاش اما بامزه بود که وسط جلسه بحث و رعی گیری برای این قانون آقای غازی پور نوینده عجیب غریب ارومیه که قبلا کلی حرفای زشتی در مورد خانوم ها زده بود تذکر داد و یه جرابحثی بین ایشون و آقای لاریجانی رئیس مجلس درگرفت که بامزه بود گوش کنی. از تیل سیوم بند نهوم چند تا اساس تولداد شاورزی دامه علی جان رابطه به این نداره اصلا اصلا اصلا نکن بحثش م... بحث تو آگوست شما کشاورزی نکردید، توفانی نکردید، یه شب تو صحرا نماندید کشاورزان و را کوجو سوپارا... میدونی، آقا قزی کور حالا شما آقا زاده هستی، ما بندزاده آره در صوریم شما آلا... کمتر تو یابون بودم احسن جوستاجیر حالا علی شنو گله نکن بزن زمان حرفمو بزنم بزن. بس <تصفح> <شلوخی نکن. تصفح> بل شروع اینا. بله خلاص چیزی نموند وسط بحث تصویب قانون ممنوعیت حمله چاقو تو مجلس چاغوکشی بشه. حالا دیگه آقای قاضی پور دیگه وسط بحث چاقو میاد تذکر کشاورزی بده کارش نمیشه کرد. به امیدواریم که اخشار چاغوچش جامعه بعد از اجرایی شدن این قانون یک کمی کمتر از چیزای تیز برای شکست دادن رقبا استفاده کنن. حالا اگه هم میخوان دعوا کنن با اون فوش از دیگه مشت لگد دیگه اتفاق کنن دیگه تیزیارو دیگه غالوف کردن به خصوص که تیزی که کشا... تیزی کشای... الان دیگه مثل قدیم‌ها حواسشون جمع نیست که خط خطی نمی‌کنن میشکافن رسماً او چرا میبینی طرف چاغورو کشیده کرد تو لوزول زلمه دل رقیب درم نمیاره برادر من لاتگرامی اون چاغورو جاهلای قدیم برای ترسوندن استفاده میکردن. ماکسیمم استفاده‌اش استفادهش همین بود که یه خطی می‌انداختن طرف حساب کار دستش بیاد گوش نمیکنن که